جاناتان مرغ دریایی نویسنده ریچارد باخ بخش اول صبح بود و بر چین و شکن دریای آرام آفتاب تازه زرفشانی می کرد در بیش از یک کیلومتر دورتر از ساحل کرجی ماهیگیری سینه بر آب سپرده و آرمیده بود هزاران مرق دریایی به دنبال دعوت به صبحانه دست جمعی در هوا در حال جدال بر سر ای خوراکی به پرواز در آمدن. روز پر هیاهوی دیگری آغاز شده بود اما در دو دستها، در ورای کرجی و ساحل جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی تنها با خویشتن در حال تمرین بود در اوج سیمتری آسمان پاهای پردهدارش را پایین آورده منقارش را بالا گرفته و تلاش میکرد قوسی سخت پر پیچ و خم و دردناک را بر بالهایش حفظ کند به بالهایش قوس میداد که آهسته پرواز کند و حالا به آرامی می پرید به حدی که بادچهرش را به نرمی نوازش میکرد و اقیانوسی آرام زیر بالهایش گسترده بود. دیدگانش را با تمرکزی عمیق تنگ کرده و نفس در سینهش حبس شده بود. نیروی بیشتری در جهت افزایش آن وارد کرد، ناگهان پرهایش گره خوردن و از حرکت باز ماند و سرنگون شد. چنانکه که مرغان دریایی هرگز در هوا ساکن نمیمانند هرگز از پرواز باز نمی استند. برای آنها باز ایستادن از پرواز در آسمان به معنای ننگ و بی حرمتی است، اما جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی که بدون شرم ساری دوباره به آرامی بالهای شوقوسی سخت و لرزان داده بود و بار دیگر به آهسته ای از حرکت باز می استاد، یک مرغ عادی نبود. اغلب مرغان رنج آموختن پرواز را در حدی فراتر از یادگیری ساده حقایق به خود هموار نمی کنند می آموزند که چگونه از ساحل به سوی غذا پرواز کنند و چگونه بازگردند برای بسیاری از مرغان تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد اما برای این مرغ دریایی آنچه که ارزشمند بود پرواز بود نه غذا بیش از هر چیز دیگر جاناتان لیوینگستون عشق به پریدن داشت. او دریافته بود که با این شیوه تفکر نمیتواند مورد توجه مرغان قرار گیرد. حتی والدینش از اینکه جاناتان سراسر روزها را به تنهایی در حال تجربه صدها بار پرواز در ارتفاع پایین می گذراند حراسان بودند. او نمیدانست که مثلا چرا وقتی که در ارتفاع کمتر از نیمه فاصله گسترده بالهای خود در سطح آب میپرد، با تلاشی کمتر مدت زمان بیشتری در هوا میماند. پروازهای او با نشاندن عادی پاهایش در دریا و جهشهای آب پایان نمی گرفت. با پاهای تنگ بدن چسبیده و ایستادگی اندک در برابر هوا در حالی که سطح آب را لمس می کرد ردی طولانی و گسترده بر جای می گذاشت. وقتی که فرود آمدن را آغاز کرد در حالی که با پاهای جمع شدهش می و مسیر ماسه ای را قدم زدان می پیمو، والدینش واقعا ترسیده بودند. مادرش پرسید چرا جان چرا، چرا اینقدر دشوار است که مثل سایر اعضای گروه باشی جان، چرا پرواز در ارتفاع پایین را به پلیکان ها و الباتروس ها باگذار چرا غذا نمیخوری؟ پسرم، تو به مشتی پر استخان بدل شدید. مامان اهمیت نمیدهم که مشتی پر و استخان باشم فقط میخواهم بدانم در هوا توانایی انجام چه کاری را دارم و چه کاری را نمی توانم انجام دهم فقط همین پدر با مهربانی به او گف، ببین جاناتان زمستان دور نیست کرجی ها کم می شوند و ماهیان شناور در ساعت به جرف سفر می کنند. اگر می باید چیزی فراگیری درباره غذا بیاموز و اینکه چگونه آن را به دست آورم ادان که پرداختن به پرواز بسیار خوب است اما برای تو خوراک نمی شود. فراموش نکن که دلیل پرواز غذا خوردن است. جاناتان با حس اطاعت به نشانه تایید سرش را تکان داد و برای چند روز بعد تلاش کرد مانند مرخای دریایی دیگر رفتار کند. واقعا تلاش کرد و در حالی که به طرف تکه های نان و ماهی شیرجه میزد. به جیغ و داد زدن و جنگیدن با فوج پرندگان در اطراف اسکله و کرجیهای ماهیگیری پرداخت، اما نتوانست از احده این کار برایت. در حالی که داوطلبانه یک ماهی پر پرارزش را به مرغی پیر و گرسنه که در تعقیبش بود میبخشید، فکر کرد، چه بیهوده است، میتوانستم تمام این مدت را به فراگیری پرواز بپردازم، چیزهای بسیاری برای آموختن وجود دارد. طولی نکشید که جاناتان دوباره به تنهایی خود در دور دست بازگشت. آن دورها بر فراز دریا، گرسنه، شادمان و در حال فراگیری. موضوع درس سرعت بود. پس از یک هفته تمرین از سریعی تنین مرق جهان در این باره بیشتر آموخته بود. در ارتفاع 300 متری، در حالی که بالهایش را با شدت هرچه تمام تر بر هم می‌کوبید با شیب بسیار تند به سوی امواج شیرجه زد و فهمید که چرا مرغان دریایی شیرجه‌های پرقدرت و تند را انجام نمی‌دهند در عرض فقط 6 ثانیه با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در حال پرواز بود سرعتی که در آن بالهایش 20 بات رو به بالا کشیده میشد. بارها و بارها اتفاق میافتاد با اینکه با همه توان خود و محتاط عمل میکرد، در سرعت بالا مهارش را از دست میداد. با اوجگیری به سوی ارتفاع 300 متری ارتفاع ابتدا با همه توانش به جلو حرکت کرد و سپس با نیروی زیاد یک شیرجه عمودی را آغاز کرد هر وقت که بال چپش در یک حرکت بیرونی از حرکت باز میماند با شدت به چپ میچرخید بال راستش را می می‌کرد و مانند شعله‌ای در میان باد وحشی به راست می‌پیچی در آن حرکت بیرونی احتیاط چندان هم ساده نبود ده بار تلاش کرد و در همه حال زمانی که سرعتش از 100 کیلومتر ساعت گذشت به شکل توده در هم ای از پردر آمد و با از دست دادن مهار خود در آب سرنگون شد سرانجام در حالی که سراب ها بود اندیشید کلید معما این است که باید بالها را در سرعتهای بالا بی حرکت نگاه داشت تا سرعت هشتاد کیلومتر می پرم و بعد بالها را ساکن نگه می دارم. در ارتفاع 600 متری از نو تلاش کرد چرخی زد و به حالت شیرجه درآمد آمد لحظه ای که از سرعت 80 کیلومتر در ساعت عبور می کرد منقارش را مستقیم به سمت پایین نگه داشت و بالهایش را با استواری گشود برای حفظ این وضعیت به توان عظیمی نیاز داشت اما این روش چار ساز بود در عرض ده سانیه به سرعت 150 کیلومتر ساعت رسیده بود جاناتان به یک حد جهانی سرعت در میان مرغان دریایی دستی یافته بود اما این پیروزی زود گذر بود در لحظه ای که زاویه بالهایش را تغییر داد ناگهان با همان فاجعه مهار و وحشتناک قبلی مواجه شد با سرعت 150 کیلومتر ساعت زربه ایمانند انفجار دینامیت به او اصابت کرد جاناتان مرغ دریایی در هوا تکان شدیدی خورد و به شدت با سطح دریا که همچون آجوری سخت مینمود برخورد کرد زمانی که سر حال آمد ساعتها از تاریکی گذشته بود و زیر نور ماه بر سطح اقیانوس شناور بود بالهایش چون تکه های سرب سخت و سنگین بودند اما بار شکست بر شانه‌هایش، از آن هم گرانتر سنگینی میکرد با درماندگی آرزو کرد که ای کاش این سنگین یه توان فرسا انقدر زیاد می که می او را به آرامی به قعر دریا فرستاده و همه چیز را پایان بخشد همونطور که در آب فرو میرفت، ندایی درونی و قریب از جانش برخواست راهی وجود ندارد من یک مرغ دریاییم و به طبیعت خود محدودم اگر می باید به سرعت بپرم باید بالهای کوتاه یک شاهین را می و دا به جای ماهی موش میخوردم. پدرم حق داشت باید این حماقت را کنار بگذارم و به خانه نزد فوج مرغان برگردم و از آنچه که هستم راضی باشم یک مرغ بین یک مرغ دریایی بینوا و محدود. ندا خاموش شد و جاناتان همه چیز را پذیرفت. جای یک مرغ دریایی به هنگام شب در ساحل است. او با خود عهد کرد از این لحظه به بعد یک مرق عادی باشد تا برای همه شادمانی بیشتری فراهم کند. خسته و فرسوده از آب تیر جدا شد و به سوی خشکی پرگشود. از اینکه درباره پرواز در ارتفاع پایین چیزهای آموخته بود خوشنود بود اندیشید اما نه من به پایان راه رسیدم هرچه که آموخته دیگر تمام شد من یک مرغ دریایی چون مرغان دیگرم مثل آنها پرواز خواهم کرد سپس با رنج فرابان به سوی ارتفاع سیمتری اوج گرفت و در حالی که بالهایش را به سختی برهم هم به سمت ساحل پرید از اینکه تصمیم گرفته بود چون دیگر مرغان فوج باشد احساس بهتری داشت دیگر قید و بندهایش در برابر نیرویی که او را به سوی آموختن می پاره شده بود دیگر چالش و شکستی در کار نخواهد بود و این زیباست که رها از هر اندیشهای در تاریکی به سوی نورهای ساحل پربک شاید تاریکی صدای قریب به نشانه هشدار برخواست مرغان دریایی هرگز در تاریکی پرواز نمی کند جاناتان حشیاریه شنوایی نداشت اندیشید زیباست ماه و چراغ در آب می‌درخشند و ردی از شعاع نور فانوس دریایی را در تاریکی شب بر میگذارند و همه چیز بسیار صلح‌آمیز و آرام است فرود بیا مرغان دریایی هرگز در تاریکی نمی‌پرند اگر لازم بود در تاریکی پرواز کنی باید چشمان یک جغد را می داشتی باید نقشه‌هایی در سرت می‌داشتی باید بالهای کوتاه یک شاهین از آن تو بود آنجا در تاریکی در سیمتری آسمان جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی هیلکایش را بر هم زد. دردها و مشکلاتش ناپدید شدند. بالهای کوتاه، بالهای کوتاه یک شاهی پاسخ را یافته بود. چقدر احمق بودم. آنچه که نیاز دارم بالهای کوچک و کوتاه است. کافی که پرهایم را بیشتر جمع کنم و فقط با نوک آنها بپرم. بالهای کوتاه در اوج 6 متری در بالای دریای سیاه پرواز کرد و بدون لحظه ای تفکر به شکست و مرگ بخش تخت بالها را به بدن چسبانده و تنها قسمت نیزه‌ای نوک بالها را در دل باد گسترد و به حالت شیرجه عمودی درآمد وزش باد در سرش صدایی سهمگین داشت 100 کیلومتر 150 کیلومتر 190 کیلومتر و باز هم سریعتر. فشار بالها حالا در دویست کیلومتر در ساعت به دشواری 100 کیلومتر گذشته نبود با پیچ خم بسیار ظریف انتهای بالهایش از شیرجه دست کشید و چون توپی خاکستری رنگ در زیر نور ماه با سرعت بر فراز موجها شلیک شد برای جلوگیری از هجوم باد چشمانش را بسع و قرق سرور شد تکیلومتر در ساعت و مهار شده اگر به جای ارتفاع 600 متری از 1500 متری شیر زده بودم راستی که به چه سرعتی می رسیدم، پیمان لحظه ای پیش به فراموشی سپرده شد و به همراه آن باد پرتوان رفته بود. اما او از پیمان خود پروایی نداشت، این قول قرارها تنها به درد مرغانی می خورد که عادی بودن را می پذیرم، کسی که به اوج دانسته های خود می نیازی به این قول قرار دادها ندارد. با طولوی آفتاب جاناتان دوباره سرگرم تمرین شد از ارتفاع 1500 متری کرجیهای ماهیگیری چون نقطهای بر پهنه آبی دریا به نظر می رسیدند فوج مرغان در حال خوردن صبحانه همچون حاله از ذرات خاک می چرخیدند. او زنده بود و از شعف و قرور در خود لرزشی احساس می کرد. چرا که توانسته بود ترس خود را مهار کند بعد از آن بی هیچ تدارکی پرهای جلویی بالش را به بدن چسبان و در حالی که پرهای انتهایی و کم‌زاویه را گسترده بود مستقیم به سمت دریا هجوم برد. زمانی که از مرز 1200 متری عبور کرد، به سرعت نهایی رسیده بود. با چون دیوار محکم و کوبنده صوتی راه را بر شتاب گرفتن او میبست حالا به طور مستقیم با سرعت 340 کیلومتر در ساعت به طرف پایین پرواز کرد. در حالی که آب دهانش را فرو می داد می اگر بالهایش دران سرعت جمع نشوند به میلیونها زره کوچک پدل می شود. اما سرعت قدرت بود سرعت لذت بخش بود و سرعت زیبایی ناب بود دوباره تلاش خود را در ارتفاع 300 متری از سر گرفت انتهای بالهایش به طرزی نامحسوس با باد مهیب برخورد می کرد. کرجی و جمعیت مرقان با سرعتی شهابگون به سوی او روان بودن، نمیتوانست توقف کند، حتی نمیدانست که چگونه در آن سرعت بچرخد، تصادم به معنای مرگ آنی بود، پس چشمانش را بست. درست در آن صبحگاه پس از طلو آفتاب بود که آن واقعه رخ داد و جاناتان مرق دریایی، رو در رو به قلب فوج سرگرم خوردن صبحانه هجوم برد با چشمان بسته و سرعت 340 کیلومتر و ساعت در میان قررش عظیم بادها و پرها این بار همای سعادت او لبخند زد و کسی کشته نشد زمانی که نوک خود را بالا به سوی آسمان گرفته بود هنوز با سرعت 250 کیلومتر پنجاه ساعت می پرید و آنگاه که سرعتش را به سی کیلومتر کاهش داد سرانجام دوباره بالهای را گشود در آن اوج 1200 متری کرجی همچون ذرهای بر دریا به نظر می رسید. از پیروزی شادمان بود سرعت نهایی یک مرغ دریایی در سرعت سی کیلومتر و در ساعت یک موفقیت عظیم بزرگترین لحظه و زمان منحصر به فرد در تاریخ فوج مرقان دریایی بود و در آن لحظه دوران تازه‌ای در برابر جاناتان پرنده دریایی گشوده شد. پرواز کنان به جایگاه خلوت تمرین خود رفت. بالهایش را برای شیر جز اتفاق 2400 متری جمع کرد. این بار خود را آماده می کرد که به چگونگی دور زدن پی ببرد. او دریافت که اگر فقط یک نوک بالش را به میزان کمتر از دو نیم تکان تکاندهد در آن سرعت شگرف چرخش دارای انعطاف و تندی خواهد شد. هرچند پیش از آموختن این درس پی برده بود که تکان دادن بیش از نوک یک بال میتواند را مانند یک گلوله تفنگ به چرخش وا دارد و جاناتان نخستین مرغ دریایی کره زمین بود که کارهای دشوار را انجام داده بود. در آن روز او وقت خود را به هم صحبتی با سایر مرغان به هدر نداد بلکه تا هنگام غروب آفتاب پرواز کرد و چرخ زدن، قلتیدن آهسته در جا قلتیدن چرخش داخلی و فرفره ای را کشف کرد. زمانی که جاناتان در ساحل به فوج مرغان پیوست، تاریکی شب همه جا را در بر گرفته بود و او گیج و به شدت خسته بود. با این حال شادمانه شادمان چرخی زد و بر زمین فرود آمد. چرخشی ناگهانی و درست پیش از آن که زمین را لمس کند او فکر کرد وقتی که آنها در پروازش بشنوند به خاطر پیشرفت غیر منتظره او از شادی به برشت خواهند آمد چه چیز مهمتر از این در زندگی وجود دارد به غیر از این آمد و شده پرتقلای که سالتبار ماهیگیری دلیل دیگری نیز برای زیستن وجود دارد مقادریم خود را از اسارت جهالت آزاد کنیم می توانیم خود را به عنوان آفریده با شعور و با فضیلت و دارای مهارت باز شناسیم می توانیم رحایی یابیم. می توانیم پرواز را بیاموزیم نبید سالهای آینده در دلش میدرخشید و به ترنم نم در می آمد. هنگامی که فرود آمد ظاهرا مدتی از گرد همائی مرقان دریایی می گذشت آنها در حقیقت انتظار جاناتان را میکشیدند. جاناتان لیوینگستون، مرغ دریایی، در وسط به ایست. کلام مرغان سالخورده لحنی بسیار تشریفاتی داشت. در وسط ایستادن تنها به معنای ننگی بزرگ و یا افتخاری بزرگ بود. ایستادن در وسط به عنوان افتخار، روشی برای معرفی بهترین و پیشروترین مرغان بود. او بو اندیشید حتما فوج در حال خوردن صبحانه امروز صبح پیشرفت غیر منتظرش را شاهد بوده است ولی من افتخار نمیخواهم آرزوی رهبری ندارم فقط میخواهم آنچاری یافتم با آنان در میان بگذارم و افقهای آینده را که به همه ما تعلق دارد به آنان نشان دهم او جلو رفت سال خورده گفت مرغ دریایی جاناتان لیوینگستون به خاطر این نان که در مقابل فوج مرغان در وسط بیست انگار ضربه ای به وارد شد، زانوانش لرزیدند، پرهایش فرو افتادند هم همه ای در گوشهایش پیچیدید، ایستادن در وسط به خاطر ننک غیر ممکن است، آن پیشرفت بزرگ، آنها درک نمی کنند، اشتباه می کنند، اشتباه می کنند، به خاطر بیپروائی او در نادیده گرفتن مسئولیتهایش، صدایی جدی و با وقار این کلمات را می گفت. زیر پانهادن حیثیت و سنت خانواده مرقان در وسطی ایستادن به دلیل ننگ یعنی اخراج از جامعه مرغان تبعید و زندگی در انزوا میان سخرهای دورده است جانتان لیوینگستون روزی فرا خواهی گرفت که بیمسئولیتی فاقد ارزش است اسرار زندگانی در نظر ما نامعلوم و ناشناخته است همینقدر میدانیم که به دنیا آمده ایم که قضا بخوریم و تا جایی که ممکن است زنده بمانیم یک مرغ دریایی هرگز در حضور شورای گروه پاسخی نمیدهد اما جاناتون به سخن درآمد، بیمسئولیتی برادران من. او فریاد زد: چه کسی مسئول تر از مرغی است که به مفهوم هدف عالی تر زندگی پی برده و در جستجوی آن است؟ برای هزاران سال در تکاپوی یافتن کله ماهی بوده ایم ولی اکنون دلیلی برای زیستن داریم زیستن به خاطر آموختن، به خاطر اکتشاف و به خاطر رهایی. فرصتی دیگر به من بدهید و بگذارید را که دریافتن به شما نشان بدهم اما اقتدار گروه در هم شکسته بود مرغان یک صدا گفتم برادری من گسسته است با رفتاری خوش کماننگ هماهنگ هنگ گوش هایشان را گرفتند و به او پشت کردند جاناتان بقیه روزهایش را در تنهایی سپری کرد با این حال به آن سوی سخراهای دور دست نیز پرگشود رنجش تنها به خاطر انزوا نبود بلکه به این خاطر بود که مرغان دیگر از باور به پرواز شکوه مند که انتظارشان را می کشید خودداری کرده بودند آنها نخواستند که چشمانشان را بگشایند. و حقیقت را به طور کامل ببیند. جاناتان هر روز بیشتر می آموخت. او یاد می‌گرفت که شیرجه‌ی شیبدار در سرعت بالا می‌تواند ماهی‌های خوشمزه و کمیابی را که در عمق سمتری زیر اقیانوس گرد آمده بودند برایش به ارمغان آورد. او دیگر نیازی به کرجی‌های ماهیگیری و نان پسمانده برای بقا نداشت. او آموخت که در هوا بخوابد. و در شب در امتداد باد ساحلی که در مسافت 160 کیلومتری از وقت غروب تا طلوع آفتاب ادامه می آفت حرکت کند با همان تسلط درونی از میان مه قلیز دریا پرواز کند و در حال صعود به آسمان درخشان و چشم نواز برسد در حالی که سایر مرغان در همان وقت در زمین به سر می‌بردند و جز مه و باران چیزی نمی او آموغ که سوار بر بادهای طولانی به سرزمین های دور مهاجرت کرده و در آنجا از حشرات ظریف و خوشمزه تغذیه کند آنچه که زمانی برای فوج مرغان آرزو داشت اکنون خود به تنهایی به دست آورده بود او پرواز را آموخت و از بهایی که در برابر آن پرداخته بود افسوس نمیخورد جانتان پیبرد که ترس ملال و خشم علل کوتاهی عمر مرغانند و با پاک کردن آنها ذهن خود زندگی طولانی و مسرت بخشی را برای خود تداوم بخشید سپس در شامگاه آنها آمدند و جاناتان را در آسمان محبوبش در حال پروازی صلح‌آمیز یافتند. دو مرغی که در کنارش پدیدار شدند، همچون نور ستارگان شفاف بودند و پیکرشان در هوای باشکوه شبانگاهی تلألویی دلپذیر و دوستانه داشت. اما زیباتر از هر چیز مهارت آنان در پرواز بود، نو که در فاصله ای به دقت دو و نیم سانتیمتری از بالهای او قرار داشتند جاناتان خاموش آنها را آزمود آزمونی که تا به حال هیچ مرقی را از سر نگذرانده بود او بالهایش را چرخاند و قبل از ایستادن سرعتش را به بیش از یک یکنیم کیلومتر در ساعت کاهش داد دو مرغ نورانی به نرمی استواری از سرعتشان کاستند آنها پرواز آرام را بلد بودند او بالهایش را جمع کرد چرخی زد و به حالت شیرجه با سرعت 140 کیلومتر در ساعت به پرواز درآمد آنها نیز به همراهش با آرایشی بینقص به سرعت سرازیر شدند سرانجام چرخی زد و از حالت پرشتاب عمودی به حالت پرواز آهسته افقی درآمد آنها نیز با او چرخیدند و لبخندی زدند او به حالت پرواز عادی بازگشت و پیش از آنکه سخنی بگوید مدتی خاموش بود پرسید بسیار خوب شما کی هستید ما از فوج تویم جاناتان، ما برادران تویم. کلمات آنها قدرتمند و آرام بود. آمده ایم تو را بالاتر ببریم به خانه خودت. من خانه ندارم، فوجی ندارم، من مترودم. حالا ما داریم در میان اوج بادهای بلند و محیب میپریم. فراتر از مرز چندصد پایی، دیگر نمیتوانم این بدن فرسوده را بالاتر ببرم. چرا میتوانی جاناتان چون این را فرا گرفته ای. یک دوره درس تمام شده است و زمان دوره ای دیگر فرا رسیده در یک لحظه همه زندگیش به روشنی از نظرش گذشت جاناتان مرغ دریایی موقعیت خیش را باز یافت آنها درست میگویند او می تواند بالاتر بپرد و اکنون وقت رفتن به خانه است برای آخرین بار آسمان را نگریست سرزمین نقرهای با شکوهی که در آن بسیاری چیزها آموخته بود گفت من حاضرم جاناتان لیوینگستون به همراه دو مرغ ستارهگون اوج گرفت و در تاریکی مطلق آسمان ناپدید شد